اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خداوند تبارک و تعالی را بسیار و تشکر میکنیم بخاطر همین نعمت‌های خوب و مفید توفیقات ارزش من نگرام برایش از این که توفیقی شد امروز در خدمت فرزندان عزیزمون که خیلی دوستشون داریم و امید آینده جامعه انسانی و اسلامی هستند و سرمایه های پایدار و ارزشمند این جامعه انسانی و اسلامی هستند. در خدمتشون باشیم و در جمعشون باشیم بی نهایت خداوند و سفاس بذاریم واقعا است. در خدمت کسانی باشیم و در جمع عزیزانی که در آینده مهمترین نقش در توسعه توانمندی تعالی و ترقی و سعادت جامعه انسانی و اسلامی میتونن ایفا بکنن و داشته باشند. شما بهترین خشری از جامعه هستید که زمین و زمان احساس رضایت و ارسندی داره از اینکه افرادی مثل شما بر روی زمین قدم نگذارن چون شما خشر تحصیل کرده هستید قشر ویژه قشر خاص طبان و ظرفیت انسان یا قدرت انسان اون قسمتی ازش میشه با عنوان یک هوان و قدرت و ظرفیت نامبرد که برای توسعه رشد بالندگی و سازندگی و عمران آبادی باشه ما وقتی میگیم شما بهترین قشری هستید که روی زمین قدم برمی از این جهت که امیدمون به این هست که در آینده بتونید یک جامعه هدف از هر نظر تکامل یافته ایدئال مرغوب مطلوب ایجاد بکنید انسان های بی سواد شاید در حد خودشون انسان های سالیحی باشن اما کار تنها با انسان های صالح پیش نمیره. ما اینو نمیخوام که بگیم قشر بی سوادمون متدینن و قشر تحصیل کرده و متخصص ما بی تقوی و غیر متدینن این خیلی خطرناکه قشر بی سواد متدقیه. قشر متخصص تحصیل کرده فریخته، دامشانه غیر متدعیه هی هیچ چیزی مانع نیست که شما متخصص باشید، متعهد نباشید. شاید خیلی از بچه های ما بگن شما نیاز جامعه نیاز به تخصص ما داره جامعه نیاز به تخصص و تعهد شما داره هر دوتا برای ما هم خودت برای ما مهمی هم آبرو و شخصیتت و حیثیتت و کرامت انسانیت و اخلاقت و تهارت و پاکیت و مسئولیت تذیریت و تقوات هم تخصصت بعد یک مهندسی بگه خب حالا من مهندسم ترهای خوب تراحی میکنم اجرا میکنم حالا سیگارم بکشم مشروبم بخورم روابط نامشروی هم داشته باشم من ترهای خوب تراحی میکنم اجرا میکنم ما نگاه همون بشه خیلی بزرگتر هستیم شما سرمایه های ما هستی دوست نداریم؟ ما بچه های از تو زبال پیدا نکردیم که این نگاه بهشون داشته باشیم بچه های ما سرمایه های ما هستن همه چیزشون برای ما مهمه آبرو روح حیثیتشون جویگاهشون شخصیتشون انسان بنیادی ترین و مهمترین عنصر یک جامعه هست و این انسانی که میتونه انسانهای دیگر رو تحریک بکنه جهت بده شکل بده غیر از اینه انسانها توسط انسانها ساخته میشن درسته ما میگیم قرآن سنت ولی همین قرآن و سنت باید یک انسان ساخته شدوی باشه انسان به کمال رسیدی باشه که انسان های رو تحریک بکنه مسئولیت پذیری باشه مهربانی باشه خیرخواه و دلسوزی باشه تو جامعه وگرنه انسان های دیگه تحریک نمیشن جهت پیدا نمی بدون صرف راست که نمیشه دائمی که نمیشه ما رشد بکنیم هدایت پیدا بکنیم مسیر درست خیلی پدر و مادرها بهشون اجازه بدید حتی اگه بی سوادن. بچه های ما امروز از خیلی از پدر و مادرانشون با سوادترن ولی اگر پدر و مادر یک دغدغه ای نسبت به این فرزند دانشگاهی که داره دانشگاه می خونه یا تو مقطع ماجستیر و دکترا ارشد داری می خونه یا وقتی یک سری مسائل اخلاقی تذکری به فرزندش دخترش و پسرش بده بهش حق بدید این دغدغه رو داشته باشه شون شکارچی های ماهی امروز در دنیا هستند که دنبال سرمایه های ما هستند. بلاخره شما رشته های مختلف داری میخونید شما یک رشته که نیستید ما فکر میکنیم بچه های ما وقتی که تو مقته ابتدایی هستن نیاز به مراقبت پدر و مادر دارن بزرگتر دارن وقتی که وارد دانشگاه شدن سنشون به ایجده و نوزده و بیس رسید بالاتر رفتن به بیس و رسید دیگه خطر رفت شده اینها دیگه خودشون بزرگن دیگه نیاز به کسی ندارن ما میگن وقتی تو بزرگتر میشی خطرم به اندازه تو بزرگتر میشه همطور که تو بزرگ میشی خطرم بیشتر بزرگ میشه شاید تو مقته ابتدایی با بچه های ما کاری نداشته باشن ولی تو مقته دبیرستان، تو مقته دانشگاه وقتی بالاتر میرن خیلی با بچه های ما کار دارن خطر به اندازهی که خودت بزرگ میشی بزرگ میشه ما باید مواظب هم باشیم به فکر هم باشیم ایمنی سازی بکنیم فرهنگ سلامت رو در جامعه بالا ببریم مسونیت برای فرزندانمون ایجاد بکنیم فرهنگ نگفتن و بله گفتن دانشجوی های ما، عزیزان ما بدونن کجا و به چه کسی بله بگن و به چه برنامهی و به چه کسی و چه برنامهای نه بگن خیلی از بچه های ما رفتن سربازی تو سربازی خودشون رو پیدا کردن یه دوست خوب تو سربازی نصیبشون شده قبل از اینکه برای سربازی پایبند مسائل اخلاقی هم نبوده پایبند تعهدات دینیش نبوده رفته تو سربازی دوست خوبی تو سربازی نصیبش شده طرف برگشته فکر می کنید که یه شخصیت دینی و اخلاقیست و ایمانیست تأثیر دوست خیلی وقتها تو خانواده مذهبی بوده رفته دانشگاه تو دانشگاه سیگاری شده تو دانشگاه محتاط شده تو دانشگاه مشروبی شده یه دوست خیلی وقت بوده تو خونه پایبند بوده رفته داخل سربازی فاسد شده تأثیر دوست و غفلت و زودباوری بس خود خودو سپردن به هر کسی ما دانشجوهایی داریم که اصلاً یک سال هم درس دینی نخوندن تو هیچ کلاس دینی هم شرکت نکردن ولی باور بکنید تو جاهایی دارن درس میخوانن که اگر کسی شخصیت اونها رو نشناسه و اونها رو از نزدیک نشناسه فکر میکنه اینا بیت اپوان اگه های ما تو مدرسه دینی خودشونو حفظ کردن این هنر نیست. اگر جایی امکان گناه برای انسان ممکن نباشه بگه من گناه نمی‌کنم خو این هنر نیست. خودت تو مدرسه دینی است کلاساشم تو مدرسه دینی است مدرسه دینی مسجد خونه مدرسه دینی مسجد خونه ولی هنر اینجاست تو قلب فساد تو دنیای باز همه چی برای انسان مهیا باشه اینجا انسان خودشو حفظ بکنه میگم ما بعضی از دانشجوهامون داریم که یک دوره 20 روزه هم مسائل دینی ننگذروندن ولی از خیلی از طلبه های ما با تقواترند جلوترند منظمترن، هدفمنترن، مسئولیت تذیرترن ما میگیم تو رمضان، ما خاطره داریم از دانشجوهامون سال 69 که من برگشتم تا الان ما تو ماه رمضان بیشترین کسانی که میان مسجد آجیسوف سرور دو کشرن، بازاری های جوان، دانشجوها. بیشترین دانشجوهایی که می آمدن اونجا دانشگاه علوم پزشکی بودن. نماز ترابی می آمدن. می موندن نماز قیام. سهری با هم می خوردی می رفتن. من خیلی از بچه هامون الان می بینم که الان فوق تخصص گرفته تو قلب تو مغز و عصاب، تو جاهای دیگه یه وقت صدفتا تو یک بیمارستونی تو یک ای تو یک متنی میرم یه دفعه از من سال میکنه شیخ منو بیاد میارید نه کمی خب بعد از ده سال من چهره ها رو من فلانی هم شبهای می میامدم خیلی حالیه شبهای رمزون می آمدم. نماز قیام نماز تراوی سهری جمعی افتاری که برای دانشجو برگزار برگذار داریم که شما هم در زمینی تخصص و هم تعهد و هم مسئولیت پذیری هم مشارکت های بالای اجتماعی همه جا حضور پررنگ داشته باشه شما برای ما مهمید سه تا نقطه استراتژیک هست که ما باید بهش توجه بکنیم یک حضور یک حضور دو مثبت بودن و مفید بودن نه هر حضوری ما نیاز داریم ما دنبال سیاهی لشکری نیستیم ما نیمیخویم فقط کارامان با نعره تکمیر اینا احساساته حضور مثبت بودن و مفید بودن و قدرت‌های غیر خشن دنبال تقابلم نیستین. حضورتون باید پر رنگ باشه. شما میتونه یک دانشجوی معمولی باشید، بری دانشگاه درس بخونید یا نخونید، قبولم بشید. امروز همه قبول میشن. تو ایران همه قبول میشن. یک بخشنامه هست این یک بخشنامه است همه باید قبول بشن. اونی که با نمره 10 اونی که با 12 اونی که 15 اونی که 20 نه 20 تا واقعی نه 12 ها واقعی. ولی خیلی ها واقعاً خودشون واقعی هستند. خراف کنی نکنیم نمیشه نمیذارم ما اقلیتیم من سال 58 رفتم 50ش 50شش اقدام کردم برای دانشگاه مهدیل دو سال قبل از این اون موقع شما به دنیا نیامده بودید هیچ کدوم از شما چند سالش نیست. سی سال من برگشتم بعد از سی سال الان جلو شما نشستم گوشم کجاست گوشم کامله یا نصفش بوریده شده چشمم سر جاشه لبام سر جاشه خودم هم من هرا سفکنی نکنیم مسائل و بیخود بی, بی جهاد بزرگ نکنیم من یه فرد گمنامی نیستم که یه گوشه بنشینم کسی کاری بهم نذاشته باشه مشارکت در اوج هم داخل هم بیرون تو استان داخل کشور خارجه از استان تو همه زمینه ها پرافکنی نکنیم، نمیشه، نمیذارن، ممکن نیست تو میتونید بیری دانشگاه درساتو پاس بکنی کاری به هیچی نداشته باشی دانشجو باید مشارکت داشته باشه درستایی که تو دانشگاه میخونه اون اصلا بحثش جداست ماهی کتاب غیر درسیتون بخونید سالی 12 تا کتاب مفید تو زمینه های مختلف تو مسائل فرهنگی علمی دانشگاه اگه مجلی هست، ماهنامه هست، ای هست مقال نویسی هست، شرکت بکنید ارزاده های من بچه های من هم دانشجو هستن همسن سال شما هستن غیرت داشته باشید امروزه عزیزان من و فرزندان من کسانی که غیر متهم به تدین هستن معفقتر تو دعوت اسلامی اگر من بیام حرف دینی بزنم اخلاقی بزنم میگم فلانی شیخه دانشگاه اسلامی خونده فلانی شیخه مدرسه دینی و حوزه خونده ولی اگر یه پزشک مثل شما یه مهندسی یه گستاد دانشگاهی یک مشاوری، یک روانشناسی بیاد حرف دینی و اخلاقی بزنه کسی تو دهنش نویزنه امروز تو کشور ما سیتیزی هست دیگه نه؟ ملا گوریزی هست، سیتیزی هم هست امروز دعوتگران واقعی به اخلاق و موفق پزشکان اساتید دانشگاه فرهنگیان معلمان هنرمندان ورزشکاران بیزنسمنان تجار اینا اگر بیان تو میدان دعوت اسلامی و اخلاق اسلامی میکنن. من چند شب پیش لمزان بودم یه داستانی رو برای عزیزانم اونجا بالاخره تو فضای مجازی هم پخش شد شخصی به اسم دکتر عبدالرحمن سمیت اهل بندر بندرلنگه است محله سمیتی تو بندرلنگه من حدودا 15-20 سال پیش شاید تو دبی صدفتن ملاقاتش کردم نهاری با هم خوردیم ایشون یکی از موفق ترین دعوتگران اسلامی در جهان اسلام معاصر هست بچه های خودمونه ایشون دانشگاه پزشکی دانشگاه پزشکی بغداد و یک دانشگاه هم در انگلیس و کانادا تخصصش دستگاه های گوارشی و داخلی بیماری های داخلی پیزش بوده مناسبی هم تو تخصص خودش داشته مسئولیت هایی مکاله هایی نوشته مدیریت هایی داشته مسئولیت هایی داشته میخوام بگم که چه؟ شما میتونید پزشک باشید، مهندس باشید، روانشناس باشید، استاد دانشگاه باشید اما متخلق به اخلاق زیبای اسلامی و انسانی باشید. با یک شخصیت عالی بزرگترین امتیاز دین مبین اسلام اینی که میپردازه به تکوین و شکل دادن به شخصیت انسان بزرگترین امتیاز چه؟ دین اسلامی این عبدالرحمن سومیت بعد از چند سال که تخصص تخصص خودش کار کردن به این نتیجه رسیدن که باید بره تو میدان دعوت اسلامی انجمنی در کویت دارن انجمن خیلی که فقط در آفریقا خدمات میده میگم نه دانشگاه اسلامی خونده نه حوزه خونده پزشک بوده خودش و خانمش وقتشون رو در کار آفریقا بهترین وقتشونو خانمش هم, هم پاش و هم سفرش و همراهش به دعوت اسلامی پرداختن تو این چند سالی که آمد تو بحث دعوت اسلامی که خودش هم گلگو بود و خانمش تو اخلاق اسلامی تو چیزی که چیقی صحب میگو فقوق بشر یا وقتی قبل از انقلاب یه روغنی تو بندره باز من بچه بودم اون روغن و موقع تو بندر بود اسم روغن آلندی در اصل روغن هلندی بود. کشور اندونزی سی سال مستعمره هلند بوده. ما در اونجا نخل های روغنی داریم در مالزی و اندونزی. درخت نخل مثل نخل خودمونیم ولی نیست. چون اندوزی مستعمره هولند بود این روغن رو به اسم هولند تو دنیا پخش میکردن یعنی مصادره امروز اخلاق اروپاییه صداقت، امانت، تهارت به خاطری که ما که داشتیم کنارش گذاشتیم مسئولیت پذیری وقت شناسی شفافیت وقت گذاشتن حقوق بشر ما با فرهنگمون بیگانه شدیم اونا چه جوانه تحصیل کرده ما میگن اسلام واقعی اونجاست راست میگن این دکتر عبدالعمن سمید واقعا یک قلگو بود تو همه این مسائل 11 میلیون و 500 هزار نفر در دنیا توسط ایشون و خانومش مسلمان شدند. <تصفيق> کدام شیخی تو منطقه خودمون یک میلیون توسطش 100 هزار نفر توسط شداयत پیدا کردن، ارشاد شدن، راهو پیدا کردن با راهنماییش. 11 میلیون و 500 هزار نفر ن میلیونش 500 هزار نفر تو تا کشور بوده توسط معش، تو کینیا، ماداگاسکار و جیبوتی 500 هزار نفر 11 میلیونم تو آفریقا زمانی که منتقل شدگی به آفریقا میید سایتش بزنید دکتر عبدالرحمن رحمانسمیت بخونید زندگیش و کارهایی که. یک پزشک انجام داد تو آفریقا چند تا دانشگاه درست کرده چند تا بیمارستان بورسیه چقدر دانشجو ماه رمضان افتاری برای یک میلیون نفر تو چهل کشور دنیا صفرپن می کرده ولی مهمترین چیزی که منو تکون داد این 11 میلیون و 500 هزار نفری که تونسته اونها رو قانع بکنه محبتش صداقتش خیرخواهیش اخلاقش تعاملش مسئولیت پذیریش حفظ کرامت انسانی انسان ها خیرخواهیش مهربانیش دنیا نیست برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا حتما این داستان این دکتر عبدالرحمن سمیتو بخونید اینها میتونن بهترین دعوتگران باشن تو تخصص تو بگیر ولی به این نقطه هم توجه بکن که تو مسئولید و تو سفیرید باید ایفای نقش بکنید تو مقاله های خیلی عالی بنویس بفرست. هنرهای زیبا تو به نمایش بگذار. اصلا من میگم دنیا میدان است برای نقاشی های زیبا و قشنگ. برای تابلوهای زیبا. اصلا تابلوهای زیبا رو طراحی بکن. هنر وقت زیبا میشه، اخلاق وقت زیبا میشه، مذهبش جهانیه اگه یه مسلمان یه تابلو خیلی قشنگی بکشه یهودی ها بهش نمره میدن مسیحی ها بهش نمره میدن بودایی ها بهش نمره میدن تابلو های قشنگ بکشید نقاشی های قشنگ بکشید ترهای زیبا ارائه بدید تعامل زیبا داشته باشید هنر ارتباطات داشته باشید تقصیر دلم نیست تماشای تو زیباست من حتی اگر نخوام نگاه به این تابلو تو بکنم نمیتونم از که جذابه نمیتونم تو رو نادیده بگیرم اگر دلم من نخواد با تو مشکل هم داشته باشم از نظر مذهب و از نظر دین از نظر ایده از نظر ولی اونقدر این نقاشی تو این تابلو تو قشنگ و جذاب و دلرباست که آدمو دیوانه میکنه دیگه نمیفرسه این مذهبش چیه دانشگاه تو جامعه الگو باشید این یعنی نمونه پزشکه مهندسین موفق ما داریم که دعوتگرن از بولما خواننده های مشهور کات ستیفنز یوسف اسلام بیر نگاه کنید کاتی در دنیا چه کارهایی داره میکنه مشهورترین خواننده پاپ انگلیس بوده آه. عمرشو در ایاشی و خوانندگی و هیچ چیزی کم نداشته از مال کم نداشته دخترهای زیبا در کنارش بودن ایشونو شراا ام وا ولی یک دفعه متحول میشه یه کتابی هست از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. زندگی نامه بیش از صد شخصیت برجسته جهانه که شیش های برجستی چطوری متحول شدن؟ ورزشکارها، هنر ها، هنرپیشه ها، ها، تجار و سرمایه داران. یکی از این شخصیت پروفسور پروفیسور روجه جارودیست بزرگترین فلسفه فرانسه با خانمش بعد از سی سال تحقیق یک کتاب دیگه هست به اسم راهی به سوی دلها اینو حتماً بخونید راهی به سوی دلها این برای دعوتگران خیلی عالیه کمی مغزمون رو تکم بدیم خودمون رو تکم بدیم همین که بهمون گفتن دانشجو دیگه او دانشجو یعنی دانشجو نه هر دانشجویی. تو گفتن شیخ یعنی او دیگه اگه شیخی و شیخ الاسلامی هست اما خودشه یه ضرب مسئله تو افغانستان هست میگن ازاجا همون ازاجاست اما دهان ملح عثمان میخواهد شاید ست تا شیخ چه ازاجا تفسیر بکنه اما وقتی مولاق اسمان تو افغانستان ازاجها رو تفسیر بی هنوز بسم اللهش نگفته بود مردم متحول می شده نگاه ضعیفی به خودتون نداشته باشید خیلی وقتا انسان خودش رو تحبیر می وقتی نگاه پایین به خودت داشته باشید من نمیتونم، من ضعیفم من آجزم من داغمونم من فلانم من کسی حامی ندارم خودت حامی خودت باش. این نگاهو از خودت بلند بکن تا بلند بشید وگرنه که هم بشید تو زمین افتادی درد نداری قابل تحمل درد داشتن و دارایی قابل تحمل نیست یه وقتی کسی نداره فقیره با یک نون محیابه هم سیر با نون ماستی ولی خیلی ها درد دارایی اونها رو داره چه نابود میکنه درد بیماری قابل تحمله طرف سرطان داشته رفته دکتر گفته دو ماه دیگه بیمیری گفته کار خدا شکر خدا اینالله و اینا راجعون درد سلامتی خیلی سخته اونایی که سالمن و سلامتی دارن رنج میبرن سلامتیشون به درد هیچ کس نمیخوره نه به درد خودشون نه به درد جامعه نگاهتون به خودتون نگاه بلند باشه من باید نخشافرینی بکنم دنیا رو متحول بکنم نگو روستای چاهو و شهرو و محله سرور رو متحول بکنم این چه نگاهیه من باید دنیا رو متحول بکنم حرفی در برای گفتن در زمان خودم و بعد از خودم داشته باشه این نگاه به خودتون داشته باشید آدم تا جایی میری که فکرش بره چشنو عرب ها ما راه هندستان ما راه مسلمی هم وطن جهان ما راه کل مردم جهان مال منن من, من براشون برنامه دارم شما خیلی فرصت دارید من نمیتونم برای هر کدومتون قیمت بذارم این دخترم 500 میلیون قیمت داره این 500 میلیون یه 1 میلیارد 900 میلیون اشان شما قیمت ندارید یک ثانیتون ما به پنسد میلیون نمی فروشیم به شرطی که شما خودتون رو فیدا بکنیم گفتم مهمترین و ترین عنصر یک جامعه انسانه و این انسانه که میتونه ها رو تحریک بکنه دکتر عبدالعمن سمند یازده میلونی نیم انسان رو تحریک کرد جامعه هدف ایجاد کرد و این کار مویسر نیست مگر با دو چیز یک آموختن دو آموزش کسی که میخواد جامعه هدف رو ایجاد بکنه و یک جامعه هدفمند مسئولیت پذیر توسعه یافته پاک متماسک باید اول به خودش بپردازه آموختن بعد آموزش جامعه با آموزش تحریک میشه. آموزش بزرگترین و مهمترین نوازش اجتماعی است. اگه جامعه تو دوست دارید با آموزش اونو نوازش بده. این نوازش پایداره. این که تو جامعه رو آموزش بدید این نهایت عاطفه یک انسانه. که من باید این انسانو توانمند بکنم سر پا بکنم. پیامبر صلی از جاهلان حادیان درست کرد. در زمان به پیامبر هیچ جامعی به اندازه جامعه قریش جاهلیت نداشت. پیامبری که سواد خوندن و نوشتن نداشت با قرآن و آموزش این قرآن و این هدایت به اون انسانهای جاهل، از جامعه جاهلان هادیان درست کرد و بعد از هادیانی که تولید کرده بود با آموزش آمد مجاهدینی و مسئولیت تذیرانی رو درست کرد و دعوتگرانی که دولتهای قدرتمند زمان خودشون فرس روم فتح کرد نگو من شیخ نیستم من طلبی نیستم من دانشجوی پزشکیم من دانشجوی مهندسیم من چطور اگه دانشجوی مهندسی یا طرحهای خیلی عالی تر ارائه بده از رستای خود رو شروع کن، ولی هدف تنها رستای خود اونجا سکوی پرتابی باشه با یک طرح معماری که تو طراحی میکنید شاید چند ماه پیش دانشگاه هرمزگان آمد یک همایش داشت از پروفسور عبدالمجید عرفایی برگزار کرد نمیدونم خبرتون شد یا نشد چند ماه پیش تو بندر عباس این پروفسور عرفایی تنها کسی است که خط باستانو میتونه بخونه در دنیا نفر دوم نداره یه هم اینجاست ارگ بم مهندسین ارگ بم مهندس عرفایی یه برادرشم من هم پزشکه همشون منحصر به فردن یه ایرانی یه کرموزگانی یه سنی در دنیای خودش تنهاست مرد اوله پروفسور خوشنودی که به رحمت خدا رفت استاد دانشگاه بود تو دانشگاه زاهدان این کسی بود که امپریال کالج لندن دانشگاه سلطنتی انگلیس در قلب لندن کلید دانشگاه دانشگاهش داده بودن که هر ساعتی از شب و روز میخواد خودش بره تو دانشگاه تو کتابخانه تحقیق بکنه به یک ایرانی یک میلایی تو قلب لندن براش داده بودن حزینه سفرهای پژوهشی و تحقیقاتیش تو کل دنیا امپریال کالج لندن پرداخت می کرد وقتی تو خیابانهای بندر راه می رفت سرشیمتانی بود هیچ ماخه نمازش قضا ناشد این مرد پروفزور خوشنودی برادرش هم هست که تو دانشگاه پیام نور بود ولی اونی که به رحمت خدا رفت تو قبرسان کلاتو هم دفع شد جالب اینجاست با اون عظمت امپریال کالج لندن ویلا کلید کتابخانه ازینه های سفرهای تحقیقاتیش ولی نمازاش که نشد بود این میشم دانشجو تو دانشگاه میدونم دواسد عجب وجب میپوشه نمیدونم دباس های عجر و عجر بیریم فلان جایی سیگاری بکشیم بریم فلان جایی چیزی بکوریم نمیدونم شاد باشیم دنیا رو ما تو محبود بکنم به اون کارای بزرگی که انجام میدید ده تا دوازه تا مقالب نیست تو پروفسور میشید دنیا خریدار تو اینجا کسی خریدار ندارید ولی ما دوستتون داریم مال ما هست. آموختن و آموزشتن ها راه ایجاد یک جامعه هدف عالی است انسان ها میتونن انسان ها رو تحریک بکنن دو چیز خیلی مهمه سه چیز یکی این فرا، فرافکنی نکنید مسئولیت بپذیرید می توانم خدای یاری کنم اینو باید بگید با قدرت باید بگید با صدای بلند اصلا جلوه آینه بیست بگو می توانم خدای یاری ام کنم می توانم یاری چی می توانم خدای یاری کنم تو وقتی که همه چیز مهیا است هیچ قدر تو رو تعدید نمی نمیکنه تو دیگه اگه موفق هم بشید این لافه بولافه خوبه که انسان تو بحران ها مدیریت داشته باشه تو بحران ها انسان ساخته بشه از آسایش آسایش تولید نمیشه از آسانی آسانی تولید نمیشه این یک فرموله انسان موجودی ماجراجوست تا انسان ماجراجویی نکنه خلاقیت و اکتشافات هم نیست هر ماجراجویی یک آسیبی هم داره امروز تو صفحه مانوتور جلویت نشسته صفحه تلویزیون عمق اقیانوس‌ها ها رو و صدها گونه های دریایی و موجودات تو دریا و طبیعت زیر آب و شما میدونید که چند نفر رفتن زیر آب کوسه زدالشون پاشم قطع کرده اصلا بالا نیامدن ما اگر زیر دریا رو رو صفحه موبایل ما میبینیم تو عمق اقیانوس ها و همه موجودات و همه چه اوصافشون، خواستشون مسائلشون به خاطر یک عدی ماجراجوی کردن آسیب دیدن تا این خلاقیت ایجاد شده خداوند در قرآن میگه شما هم این سوره 100 بار خوندید هزار بار خوندید فَإِنَّمَا عَلَىٰهُسْرِ يُسْرَا اِنَّمَا عَلَىٰهُسْرِ يُسْرَا خداوند گفته دوبارم گفته که شاید فکر بکنید که از آسانی آسانی است. ولی گفته اِنَّمَعَ الْحُسْرِ يُسْرَا بعد از سختی و تحمل زحمت و قبول و مسئولیت و سختی ها آسانی حاصل میشه. یوسف حاصل میشه. من یک سال هفت تا دانشجوی یه رقمی درقمی سنت شریف رو دعوت کردم تو بندرباس تو استان هرمزگان هر هفت نفرشون شیعه بودن اون دوستم که به من پیشنهاد داد آقای زاکیری شیعه بود گفت شیخ من میخوام دعوت بکنم دوستانم که بیان استان هرمزگان یه رقمی درقمی سنت شریف کسی از من حمایت میمیکنه شما حمایت میکنید خانم مهندس باقستانی گفته برو سورو پیش شه یه انجامن دارن نه آنستا اولش نه هیچ اداره از من حمایت نکرد من از دوستانم دعوت کردم بیان استان ما که محروم راهکار بدن به بچه ها به پیش دانشگاهی ها به دابیرستانی ها که چطوری حسام اسفندیارپور سیرجانی جانی رد به سه سنتی شریف سال افتادمان شده رشته برد گفتم پسرم با ها پیمون یا با قطار با ماشین گفتم خانه های ما پر از ماهی و میگوست فریزیره های ما خونه هم داریم جا هم داریم دانشجو خانه با یه ساندیویج هم سر میکنه یک هفته تو خونه شخصی من بودم با ده هزار آموز من تو استان هرمزگان جلسه برگزار کردم آن سبرش تغییرش رو نگرفت روزی که میخوااستم برند از شرمندگی اداره کل دعوتشون کرد خیلی ناراحت شدن اونجا حرف تند بزدم بشون. شما ما رو نگرفتید نگفتین گفتیم تو نمازخانه یک شبانه میزی ما میخوابیم یه فلفل به ما بدید. گفتیم ما میتونید. ولی من این کارو کردم. اینا رو میگم که میشه خیلی کارها کرد. هفت روز تو خانه من بودن. با ده هزار دانش آموز من جلسه گرفتم راه کار دادم. یه روز خانم دکوکی که مدیر دبیلستان دخترانه شاهد بود الان تو اداره بندره تو اداره بندر من رو دید گفت شیخ دیگه از اون دانشجی های سنت شریف دعوت نمیکنید تا چند ماه این دخترای دبیرستانی تو شاهد اصلا حال و هواشون عوض شده بود برای درس خوندن شما درس می دقیقی ما کردیم نوره بچه هامون افت کرده هر کدوم تو دانشگاه تو یک گوشه نشسته منزوی ما یه طلبه داشتیم اینجا تو مدرسه بندرباد دانشگاه قبول شد گفت شیخ من برم دانشگاه یا ادامه بدم اینجا گفتم طلبه زیاد داریم تو برو تو دانشگاه رفت طرف برازجون رو رو اونجا چند سال اونجا مند نزدیک به 100 و خورده دانشجو چه؟ شناسایی کرد از بچه های خودمون چه تحول اونجا ایجاد کرد بچه های خوب و هدفمند و شناسایی بکنید شیه و سنی رو شناسایی بکنید اونایی که دلشون برای این خاک و برای این استان و برای این کشور این خاک مال ماست میهن ماست نسل جوان آیندم بچه های ما هستن بچه های همین سرزمین هستن کس نه پشت من جز نخونه انگشت من شما جوانی درد جوانها رو حس می کنید خودتون رو پیدا بکنید وقتی تویسگاه قطار یه روز فرستادمشون بازار که تفریح بکنن چیزی بخرن یه نفر رو همراهشون کردم آقای بهبر سعدی گفتم نگاه بکنی اینا چی میخوام با تازه حالا یه چند مدتی تیوی شد یک ماهی که ویدیو سی دی آمده بود سعدیم نیگفت نگاهشون کردن رفتن دست گذاشتن رو هم ویدیو سی دی. بعد گفتن چنده بعد پولشون در آوردن گفته بود سی ازار پولشون رو شمردن گذاشتن تو جیبشون سی تومان تومن نداشتن که یک ویدیو سیدی بخرن این حسام اسفندیار وقت صحبت میکرد برای پیش ها برای اون ببخشید برای دوم دبیرستان سوم دبیرستان میگه من پول نداشتم که یه دور کتاب بخرم دو نفر با هم شریک شدیم یه داره کتاب گرفتیم روز نه ساعت مطالعه مفید درو گفت کرده بودیم تو پارک درس خوندن که آدم دست تمرکز نداره برید تو پارک و کنار و ساحل و بعد یه نگاه رو کتاب میندازی یه نگاه به ماشینا یه نگاه به موتورها یه نگاهی با آدم ها. روز نه ساعت در کف میکردم میگه مطالعه مفید ردبیس سه شد سی هزار من تو جیبشون ندود که یه ویدی سیدی پول کتاب نداشتن ولی همهشون شون رفتن در من احزاس دیگه قبل از رفتنشون با من تماس داشتن اینه شما برای ما خیلی ارزش دارید اگه شما رو بیهوبیت کردن جامعه ما توهی میشه. وقتی سرمایداران توهی شدن، بیعرض شدن، تحقیر شدن، با اخلاقتون و خوندن تون و مسئولیت و محبتتون و اتحاد و انسجامتون اجازه ندید کسی شما رو تحقیر بکنه به شما شبیه خون بزنید. من یه دوستی داشتم از اطراف لارستان خود رحمتش بکنه این چهل تا مدرسه و مسجد و مراکز فرهنگی تو کشور درست کرد پیرمردی بود میگو سه تا پسر داشتم اینا از دویلستان تو آمریکا تحصیل کردن دکترای شیمی دکترهای ژنتیک از دویریستان دیبلومشون تو امریکا تا دکتراشون دیگه روزی که میخواستم برن پسرم روبروم نشست گفتم بابا کجا میخوای برید گفت امریکا میخوایم گفتم برای چی میخوای برید گفت میخوایم درس بخونم گفتم یه بار دیگه بگو بابا برای چی میخوای برید امریکا بای پات تو کفش کردی یه کفش که منو به فرست گفت بابا درس بخونم. او یه بار دیگه با... بعد از سه بار میگفتم پسرم دست به بابات بده دیگه رو گرف و دست شوفا شوردم تکون دادم گفتم اگر تو میخوای برید درس بخونید منم به تو تعهد میدم اگر شده ماشین زیر پام بفروشم برای درس خوندن تو هزینه بکنم ولی به شرطی که تو این تعهدی که میدید بهش عمل بکنید میگه رفتن تا دکترا اونجا خوندن لب سیگار نزدن که هر شب تو کازینو و بار و با یه دختری بعدا موقع برگشتن یه زن مسیحی با خودش بیاره که من ما عاشق همین میخوام با هم ازدواج بکنیم میگه لب سیگار نزدن اونجا هیچکس کسیم بالا سرشم نبود تو آمریکا فقط اون تعهد اونو نگه داشت بعد که دکتراش گرفت گفت بابا از دخترهای مومن خوب رستامون به من زن بدید من وقتی میرفتم دوبه پیشش میگو شیخ شما روز جمعه بیا پی شما درسته وقت محدود فلان ولی جمعه رو به ما اختصاص بده گفتم پدرم چرا جمعه یا پنجشنبه که شب جمعه باشه یا بعد ازور جمعه گفت میخوام که هر سه تا پسرام که تو دانشگاه هم استاد دانشگاه پروفسورن پروفوسور الان رئیس یه قسمی هم اینا جمعه دیگه پنجشنبه بعد ازور پنجشنبه همه میان میخوام اینا باشن حرف شما را بشنون، با شما آشنا بشن بدونن پدرشون داره چه کار میکنه تو مطاقه و این انتظار ما از شماست از فرزندان عزیزمون که امید ما هستن و سرمایه های پایدار و واقعی ما هستن و ما میخوایم مسئولیت آینده جامعه رو تحویل شما بدیم قطعا شما هم اونطوری که ما فکر میکنیم هستید. ولی خب چند چیز تو زندگی لازم داریم. یکی تذکر به هم دیگه. عضو تعلیم در لحن هم میفرمایم خیلی در ما نیست اگر این کلمه رو به هم نگیم.